نام خدای یگانه مهربان سلام افسانه ها هویت نامیرای یک ملت آن که سینه به سینه نقش شده و از نسلی به نسل دیگه میرسند افسانه ها از احساسات و باورهای مشترکی سخن میگند و به همین دلیل به آسانی مرزهای جغرافیایی رو در هم میشکنند و سرزمینی به سرزمین دیگه میرن و خودشون رو با فرهنگ و آداب و رسوم اون سرزمین هماهنگ میکنن. در برنامهٔ هزار افسان به سرزمین لهستان سفر میکنیم و افسانهای رو از مردمان این سرزمین براتون نقد میکنم به نام افسانهٔ شاهزاده و دختر یتیم برگرفته از کتاب افسانه‌های مردم لهستان گرداوری السی بایرد با ترجمه از فاطمه شاه حسینی روزی روزگاری شاهزاده جوان و زیبایی بود که پیشا پیش سپاهیانش به طرف جبهه جنگ رفت در همین موقع پیرمرد دورگرد آوازخانی رو دید که مقابل قصر در حال نواختن آهنگ و خوندن آواز بود شاهزاده که علاقی زیادی به موسیقی داشت به سپاهیانش فرمان داد چند لحظه سب کنیم؟ سپایان ایستادند و شاهزادی جوان گوش به آواز پیرمرد مرد دورگرد سپرد وقتی پیرمرد آوازش تموم شد رو کرد به یکی از سرباز ها و گفت تو، تو در جنگ کشته خواهی شد و بعد رو کرد به سرباز دیگه و گفت و تو، تو صحیح و سالم به خونت برمیگردی در این موقع سربازی جلو رفت و پرسید من چی؟ آیا در مورد منم میتونی چیزی بگی؟ پیرمرد آوازخان نگاهی به سرباز انداخت و گفت تو پسرم مجروح میشی. که جوونی که شاهد این صحنه بود پوزخندی زد و از پیرمرد پرسید خب بر سر من چی میاد؟ پیرمرد پیرمرد آوازخون گفت والا حضرت به سلامت شما پیروز مندانه به وطن باز خواهید گشت شاهزاده که شنیدن این حرف خوشحال شده بود گفت دیگه چی میتونی بگی چه زمان و با, با کدوم شاهزاده خانم ازدواج میکنم ها پیرمرد آواز آوازخون فکری کرده و گفت والا حضرت تا یک سال آینده ازدواج خواهند کرد اما اما شاهزاده به تندی پرسید اما چه خبری داری پیرمرد جواب داد اما نباید شاهزاده خانم قربان شما شما با دختر فقیر یتیمی که در بین تلی از زباله پیدا شده استوارش کنید شاهزاده شنیدن این حرف خیلی عصبانی و خشمگین شد و فریاد زد چطور جرأت میکنی این حرف رو بزنی مگه یادت رفته که من پسر پادشاه این سرزمینم و جز با یه شاهزاده خانم با کسی دیگه ای نمیتونم ازدواج کنم ها و بعد در حالی که سخت رنجیده خاطر شده بود دستور حرکت داد و سپاه به داد شش ماه گذشت و در این مدت خبری از شاهزاده و سپاهیانش نبود تا اینکه روزی صدای شیپور از دوردستها به گوش رسید شیپوری که خبر از اومدن شاهزاده و سپاهیانش میداد ملکه با خوشحالی به طرف پنجره دوید و پسرش رو دید که از بالای تپه به طرف قص میاد سپاهیان با خوشحالی پرچم رو تکون میدادند و بر تبلها میکوبیدن و نوازندگان سرود پیروزی می نواختن. بله، گفته پیرمرد مرد به حقیقت پیوسته بود و شاهزاده پیروزمندانه به خونه بازگشت. اما این فقط ملکی نبود که از بازگشت فتحانی شاهزاده خوشحال بود بلکه، مریکای زیبا و مهربون هم از خوشحالی دست تکون می‌داد و با شادی میخندید. شاهزاده نگاهش به بالا افتاد و مریکا رو دید. اما به جای اینکه شادی مریکا رو پاسخ بده با ناراحتی روش رو برگردوند چرا که بیاد پیشگویی پیرمرد دورگرد افتاد که حالا نیمی از گفته‌هاش یعنی بازگشت پیروزمندان از جنگ به حقیقت پیوسته بود. شاهزاده وقتی دید مریکا از پشت پنجره اتاقش به اون نگاه میکنه و به نشونه خوشامدگویی میخنده، به یادش اومد که 17 سال قبل مریکای فقیر و یتیم رو در میون تلی از زباله پیدا کرده بودند و پادشاه و ملکی چون دختر نداشتن، اون رو به قصر آوردن و مثل دخترشون بزرگ کردند. اونها هم مریکا رو خیلی دوست داشتن راستش رو بخواین شاهزاده هم اونو دوست داشت. اما اما نمیتونست بپذیره پذیره مریکا همون کسیه که مقدر شده با اون ازدواج کنه زمان گذشت و شاهزاده هر روز بد تر از روز غرب می شد. اون رفتار بدیم با امریکا داشت و قلبش نسبت به اون پر از کینه و خش شد تا جایی که تصمیم گرفت دست به کار بیرحمان بزنه. بعد. شاهزاده افسانی ما دستور داد قایقی سرپوشیده بسازن و اونو توی آب بندان، بعد نقشه ریخت. با خوشحالی به سراغ مریکا رفته گفت امروز اومدم تا با هم به گردش بریم دوستری مریکای عزیز با هم به گردش بریم ها؟ مریکا که از شاهزاده انتظار چنین پیشنهادی رو نداشت آروم جواب داد هر چی شما بگید و بعد و همراه شاهزاده برای گردش و تفریح به کنار روتونه رفت در این موقع شاهزاده گفت مریکای عزیز بهتر اینجا بمونی تا من برگردم میخوام یه نگاهی به اطراف بندزم مریکای بیچاره هم کنار رودخونه منتظر موند تا شاهزاده بره و زود برگرده اما شاهزاده خدمتکارش رو صدا زد و به اون دستور داد مریکا رو داخل قایق ببره و اون رو به جریان سریع آب رودخونه بسپاره. مریکای بیچاره به دست جریان رودخونه سپرده شد شاهزاده که خیالش راحت شده بود آهی کشید و گفت حالا دیگه مریکا از سر راه من برداشته شده و میتونم با هر کسی که بخوام استفاش کنم اما بشنوید از قایقی که میریکا رو در داخل خودش داشت قایق رفت و رفت تا سرانجام به آسیا رسید که جلوی جریان قوی آب رو گرفته بود قایق مستقیم زیر چرخ بزرگ آسیاب رفت و آسیاب از کار افتاد آسیاون بیرون اومد تا ببینه چه اتفاقی افتاده و وقتی چشمش به قایق افتاد چند تا از کارگرانش رو صدا کرد تا بیان و قایق رو از آب بیرون بیارن کارگرای آسیابون ملیکای بی رو از قایق بیرون آوردن و آسیابون اونو به خونش برد زن آسیابون از دیدن ملیکا خیلی شد شده گفت دختر جان خوش اومدی خوش اومدی پدر و مادرت کجان؟ مریکای بیچاره با شنیدن این حرف شروع کرد به گریه کرد زن آسیابون اونو آروم کرد و گفت دخترم دخترم گریه نکن تا هر زمانی که بخوای میتونی اینجا پیش ما بمونی فقط فقط دخترم بگو از کجا میایی و میخواستی به کجا بری ملیکا هم تمام ماجرای زندگیش رو برای آسیابون و زنش تعریف کرد چند ماهی گذشت و آسیابون و زنش روز به روز به میریکا علاقه بیشتری پیدا میکردن میریکا توی این مدت دلش خیلی برای پادشاه و ملکه مهربون تنگ شده بود و آرزون کرد روزی بتونه دوباره اونا رو ببینه اما وقتی به شاهزاده و رفتار عجیب و ظالمانش فکر میکرد قمگیمی شد روزی میریکا کنار رودخونه رفت تا کمی گل بچینه که گدفه دید یه گروه شکارچی سوار بر اسب از بالای جاده دارن به طرفش میان میریکا خوب که بونا نگاه کرد با کمال تعجب دید که شاهزاده پیشاپیش اونها در حرکته ترس عجیبی وجود میریکا رو دربر گرفت و قبل از اون که فرصت پیدا کنه روش رو برگردونه شاهزاده اونو دید و فوراً به خدمتکارانش دستور داد تا مریکا رو دنبال کنن اونا با دهکده آشنا نبودن اما مریکا اونجا رو خوب میشناخت بنابراین به جای این که فرار کنه و اونا تقیبش کنن خودش رو میون بوتها پنهان کرد شاهزاده بر سر خدمتکارانش فریاد میزد زود باشین باید اونو پیدا کنین زودتر نمیتونه زیاد از اینجا دور شده باشه بیشتر بگردین اما خدمتکارها هرچین ورون ورگشتن اثری از امریکا ندیدن که ندیدن و بعد از چند ساعت بدون نتیجه به نزد شاهزاده برگشتن هوا که تاریک شد ملیکا از مخفیگاهش بیرون اومد اون میدونست دونست که برگشتن به خونه یا سیابون کار خطرناکیه بنابراین با تمام توانی که داشت شروع به دویدن کرد اونقدر دوید و دوید تا اینکه به قصر باه رسید جلوتر که رفت توی ایوون قصر دوازده شاهزاده خانم رو دید که در حال ریسیدن نخ بودند اونها وقتی چشمشون به ملیکا افتاد دست از کار کشیدن و به استقبالش رفتن و بعد از اینکه کمی به اون آب و غذا دادن ازش پرسیدن تو کی هستی؟ از کجا میای؟ چرا به تنهایی با این حال گرفته و غمگین در این اطراف سرگردونی ها؟ ملیکا هم ماجرای زندگیش رو برای دوازده شاهزاد خانم بازگو کرد اونا با شنیدن ماجرای زندگی امریکا دلشون برای امریکای بی سوخت و به نزد پدرشون رفتن و از اون تقاضا کردن که اجازه بده امریکا با اونها زندگی کنه و پادشاه هم سرزمین هم که مرد مهربونی بود با کمال میل پذیرفت و دوباره روزهای شاد زندگی امریکا از راه رسید شاهزاده خانوما با اون مثل یه خواهر رفتار میکردند و امریکا هم هر اونچه که بلد بود مثل گلدوزی و آشپزی به اونا یاد میداد همه چیز به خوبی و خوشی پیش میرفت اینکه روزی شاهزاده سوار بر اسب پیشاپیش گروه برای خاصکاری از شاهزاده خانم به قصر اومد و میخواست یکی از اونا رو به همسری خودش انتخاب کنه. به محض ورود شاهزاده به قصر مریکا اونو شناخت، ولی به شاهزاده خااننم چیزی نگفته و فورا خودش رو توی اتاقی پنهان کرد. شاهزاده خانم که متوجه غیبت امریکا شدن پی به ماجرا بردن و متوجه شدن خاستگارشون همون ای که با امریکا بیرحمانه رفتار کرده تصمیم گرفتن با اون ازدواج نکنن شاهزاده روز اول به بزرگترین دختر پادشاه اپراز علاقه کرد و به اون وعد و وعیدهای زیادی داد اما اما همه این کارا بیفایده بود و شاهزاده خانم اونو دست انداخت و در پایان روز به شاهزاده گفت متاسفم شاهزاده جوان من قصد ازدواج ندارم شاهزاده روز بعد به خاستگاری دومین دختر پادشاه رفت ولی اون هم مثل خواهرش شاهزاده رو دست انداخت و از ازدواج با اون امتناع کرد. روز سوم شاهزاده با هدایای زیبا و گرانبها به خاستگاری سومین دختر پادشاه رفت و این بار هم نومیدانه برگشت و خاستگاری ادامه پیدا کرد. و دوازده دختر پادشاه دست رد بر سینه شاهزاده زدند. شاهزاده خشبین شد و بدون اینکه خدا حافظی کنه در حالی که قسم میخورد انتقام بگیره سوار بر اسب شد و رفت رفت و رفت تا اینکه توی جنگل به کلیسای قدیمه و مخروبه رسید کمی که در اونجا استراحت کرد فکری به ذهنش خطور کرد فورا از چند خدمتکار خواست که به قصر برگردن و یکی از اون دوازده شاهزاد خانون رو به زور با خودشون به کلیسا بگردن و به کشیش دستور داد پدر فوراً برای اجرای مراسم ازدواج من آماده شد خدمتکارها برای آوردن یکی از شاهزاده خانوم ها رایی قصر پادشاه شدند و کشیش هم آماده برگزاری مراسم ازدواج شاهزاده شد و ما بشنوید از مریکای افسانه ما. بله. مریکا وقتی مطمئن شد شاهزاده قصد رو ترک کرده آروم از مخفیگاهش بیرون اومد و به تنهایی در باغ قدم میزد که یه دفعه چند نفر از گوشه و کنار به طرف اون هجوم بردن و با زور رو با خودشون بردن. اونا به تاخت به طرف کلیسا رفتن. شاهزاده با دیدن اونها فریاد زده و گفت: آهای شاهزاده خانم رو آوردین؟ یکی از خدمتکارها با حیجان جواب داد البته قربان، البته، البته هوا تاریک شده بود کلیسا هم تاریک بود و اونها هم با پارچه‌ای صورت میلیکا رو پوشونده بودن بنابراین شاهزاده فکر کرد اون یکی از اون دوازده شاهزاده خانومه و به کشیش دستور داد که پدر، فوراً مراسم رو شروع کنه. مریکا اونقدر گیج شده بود که نمیدونست چی کار کنه و جواب داد بله بله و اونا به عقد همدیگه در اومدن بعد از مراسم شاهزاده سوار بر اسب و مریکا با کالسکی که شاهزاده براش فرستاده بود همه در سکوت به طرف قصر حرکت کردند پادشاه و ملکه برای خوشامدگویی به عروس خانم جلوی در قصر ایستاده بودند. شاهزاده با غرور بازوی مریکا رو گرفت تا در پیاده شدن از کارسک کمکش کنه بعد خدمتکاران ملکه پارچه روی صورت مریکا رو کنار زدن و اونجا به جای شاهزاده خانم مریکا ایستاده بود. پادشاه و ملکه از دیدن گم گمشده خیلی خوشحال شدند چون فکر میکردند اون مرده و براش حتی هم کرده بودند اونا اینقدر خوشحال شده بودند که فراموش کردند پسرشون با یه دختر یتیم ازدواج کرده شاهزادم وقتی متوجه شد که نمیشه با سرنوش سر تسلیم فرود آورد بعدها متوجه شد که با داشتن همسری مثل مریکا خوشبخترین شاهزاده جهانه دوازده شاهزاده خانم همراه با پدرشون به جشن ازدواج آمریکا و شاهزاده اومدن و در خوشحالی اونها شریک شدند افسانی شاهزاده و دختر یتیم رو از مردمان سرزمین لهستان براتون نقل کردم برگرفته از کتاب افسانه‌های مردم لهستان گردآوری السی بایرد با ترجمه از فاطمی شاه حسینی ناگفته پیداست که افسانه‌های هر ملت و کشوری هایی داره که اونها رو از افسانه‌های ملل دیگه متمایز میکنه در افسانه‌ها و قصه ها جنبه ارزشمند سنتی و پسزمینه فرهنگی و روانشناسی ملت های مختلف رو به وضوح میشه دید و در واقع افسانهها هویت و اصالت نامیرای هر ملت به شمار میرن هزار افسان کار مشترکی بود از نمیسنده و سردبیر زینت صالحپور ویراستار سویلا کریمی اجرا مهران دوستی صدا فاطمه جلالی زهرا عبدالله ساده تا افسانی دیگر بدرود